این داستانک پری هوشیار یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون زن و مردی بودند که فقط یه دختر داشتند اونا فکر میکردند که دخترشون فوقالعاده باهوشه از این رو اسم اون رو پریه هوشیار گذاشتند روزی مرد به همسرش گفت حالا دیگه دخترمون بزرگ شده و باید هرچه زودتر به فکر ازدواج باشیم. مادر در جواب گفت خوب اگه خاسگاری پیدا بشه این کار رو می‌کنیم. چندان طول نکشید که جوانی به نام هانس برای خاصگاری نزد این پدر و مادر خوب آمد. منطقه شرطی قایل شد. شرطش این بود که اگر دختر به آن هوشیاری و زرنگی که پدر و مادرش ادعا میکردند نبود، ازدواج صورت نگیرد. پدر با هیجان گفت: از بابت عقل و هوش او متفنن باشید. مادر گفت: او نسیمی را که در خیابان میوزد با چشمان خود میبیند. او صدای پریدن مگس روی سقف را میشنود. ولی پدر و مادر به خاستگار نگفتند که دخترشون کار کردن و زحمت کشیدن و دوست نداره و دختری تنبله. به هر تقدیر اونها در کنار خواستگار نشستند و با خورسندی مشغول صرف شام شدند. در این موقع مادر گفت پری برو به زیر زمین و کمی شربت بیار. پری تونگی برداشت و به طرف سردابه رفت و برای اینکه کار رو زودتر تمام کنه در هین رفتن سرپوش تونگ را برداشت. وقتی وارد سردابه شد چارپایه کنار بشکه گذاشت تا روی اون بشینه و مجبور نباشه خم بشه. بعد تونگ رو زیر شیر گذاشت شربت به کندی در تونگ ریخته می و اون با بی صبری منتظر پر شدن اون بود. دختر همونطور که منتظر بود به دوروبرش نگاه کرد. ناگهان چشمش به کلنگی افتاد که در تیرک سقف فرو رفته و بنا فراموش کرده بود اونو برداره. پری هوشیار شروع کرد به گریه کردن. او فکر کرده بود که اگر با هانس ازدواج کنه حتما یکی از اونها با سقوط کلنگ کشته خواهد شد. او اونقدر گریه کرد که خسته شد. اونا که دور میز مشغول صرف شام و منتظر شربت بودن چون خیلی طول کشیده بود زن خدمتکار رو دنبال دختر فرستادن و گفتن برو ببین پری چرا دیر کرده خدمتکار رفت و از پری پرسید چرا گریه می پری هوشیار در حالی که به سقف اشاره می گفت چرا گریه نکنم؟ فکر کنم وقتی با هانس ازدواج کنم یکی از ما ممکنه با این کلنگ کشته بشه زن خدمتکار با شنیدن این حرف به گریه افتاد و گفت چقدر آدم باید باهوش باشه که همچین حادثه ای رو پیشبینی کنه. وقتی دیدن که خدمتکار هم دیر کرده خدمتکار دیگری رو به دنبال اون فرستادن. نیز وقتی قضیه رو شنید شروع کرد به گریه کردن. پدر و مادر که دیدن از اونا خبری نشد خودشون راه افتادن و به سردا رفتن. وقتی وارد سردابه شدن و داستان رو شنیدن، اون چنان گریه و شیونی به راه انداختند که سر و صدای اون به گوش هانس رسید. اون با کنجکاوی بلند شد و به دنبال اونها رفت تا ببینه چه اتفاقی افتاده. وقتی هانس وارد سردابه شد، دید محشری شده و همه در حال شیون و زاری هستن. انگار هر کسی سعی می کرد بلندتر از اون یکی گریه و زاری کنه. اون با حیرت فریاد زد مگه چه مصیبتی رخ داده؟ پری گفت هانس، هانس عزیز به اون تیرک نگاه کن. به دلم برات شده اگه با تو ازدواج کنم یا من با این کلنگ کشته میشم یا وقتی تو برای آوردن شربت به سرداب بیای کلنگ روی سرت میافته." حالا فهمیدی چرا همه گریه می‌کنیم؟ هانس که حس خودخواهیش ارضا شده بود گفت: تو پری هوشیاری هستی که به گریه افتادی و دیگران رو هم به گریه انداختی. من به دنبال همسر باهوشی مثل تو بودم و انتظار دیگه‌ای نداشتم. بعد دست دختر رو گرفت، او رو از سردابه بیرون آورد و به طرف میز شام برد. اون شب به خیر و خوشی گذشت. و مدتی بعد مراسم ازدواج صورت گرفت. ولی پری هوشیار از کار کردن خوشش نمی آمد. وقتی چند هفته ای رو به تنبلی گذروند، هانس گفت: همسر عزیزم، من باید سر کار برم و برای گذران زندگی پول در بیارم. بهتر نیست تو هم بری و در مزرعه زورت کار کنی تا کمی آرد برای پختن نون داشته باشیم. زن جواب داد باشه اگه تو بخوای این کار رو میکنم. صبح روز بعد هانس برای کار بیرون رفت. همین که رفت همسرش سوپ خوشمزهی برای خودش پخت و همراه خود به مزرعه برد. وارد مزرعه که شد به خودش گفت خب حالا باید چیکار کار کنم؟ اول بخوابم یا اول غذا بخورم؟ نه بهتر اول غذامو بخورم. بعد هم نشست و یک ظرف پر و پیمون غذا رو خورد. احساس کرد سنگین شده و از خودش پرسید: خب حالا باید چیکار کار کنم؟ اول ها رو جمع کنم یا اول بخوابم؟ فکر کنم بهتره قبل از اینکه کار رو شروع کنم یه چرت بخوابم. او وسط ذرت‌ها دراز کشید و به خوابی عمیق فرو رفت. هانس به خونه برگشت. اون انتظار داشت غذاش آماده باشه ولی کسی توی خونه نبود مدت منتظر شد ولی کسی نایمد هانس با خودش گفت چه زن هوشیاری؟ اونقدر کار میکنه که حتی موقع غذا خوردنم به خونه بر نمیگرده شب شد و هنوز از پری خبری نبود هانس راه افتاد که دنبال زنش بره و ببینه چقدر ذرت جم کرده وقتی هانس وارد مزرعه شد، دید ساقه‌های های دست نخورده و کسی همونجا نیست. بیشتر جستجو کرد و دید که پری هوشیار در میان زررت ها آنچنان به خواب رفته که انگار در این دنیا نیست. هانس با عجله رفت و توری رو که زنگوله های کوچکی داشت آورد و دور پری پیچید. اما زن همچنان در خوابی عمیق بود. بعد به خونه برگشت در و قفل کرد و مشغول کار شد انگار که هیچ وقت همسری نداشته بالاخره پری هشیار از خوابی طولانی بیدار شد و دید که هوا کاملا تاریک شده اون کمی فکر کرد و بیاد آورد که کجاست بلند شد تا به خونش بره اما هر قدمی که برمی داشت زنگوله ها صدا می کرد صدای زنگوله در اون تاریکی احساس عجیبی در اون به وجود آورده بود و باعث شد از خودش بپرسه که آیا واقعا همون پری هوشیاره یا کس دیگهیه؟ اون مرتب به خودش می گفت آیا من خودمم یا کس ای هستم؟ مدتی فکر کرد اما همچنان تردید داشت دست آخرم نتونست به این سوال پاسخ بده بالاخره چیزی به مقصش خطور کرد و با خودش گفت میرم خونه و از هانس میپرسم که آیا من خودم هستم یا یه نفر دیگم. اون حتما میتونه تشخیص بده. هوا تاریک بود ولی اون خیلی زود راهش رو پیدا کرد. همونطور که میدوید زنگوله ها هم صدا میکردن. در ورودی خونه قفل بود. پری به پنجره کوبید و فریاد زد. هانس، آیا پری در خونه است؟ هانس جواب داد، بله در خانه است. پری هشیار از شنیدن این حرف وحشت کرد و فریاد زد. پس من اون پری هشیار نیستم؟ اون راه افتاد و از خونه همسایه‌ای به خونه همسایهی دیگه رفت. وقتی همسایه ها صدای زنگوله ها رو میشنیدن اجازه نمیدادن پری وارد خونشون بشه. حتی بعضی از همسایه ها اونو نشناختن. بالاخره پری هشیار از ده گریخت و تا کنون کسی ازش خبر نداره. خوب باید نتیجه گرفت که فعال و پرکار بودن بهتر از اینه که آدم فقط هوش و ذکاوت داشته باشه.